این دقیقاً از اینجا شروع شد که یه بی تی بود که علی ماجیک پرودوسرش مثلا برای بهزاد فرستاده بود بهزادم گفته بود من اینو بذارم تو آلبوم منم بیتو شنیدم و گفتم آره با بود ولی قرار بود فقط بهزاد بخونه روی اینا های. بعد سیاوش بیتش رو شنید گفت من خیلی حال میکنم و اینا بعد یه کورس نمیش رو بیتش منم کورس سیاوشو شنیدم قرار شد که آهنگو سه نفری توش باشیم و اولین سینگل آلبوم بهزاد باشه که با ساده جلوت رد میشم از رود و آلفا رومه اون شاغاله تارمتین و رپ فارسی نمیخوره لسایزت ای پیبر میداری تیریپه گدگد همش مرقه تخ میده تخ کن نترس پرت میشی از بومه برجل عرب یه دیلو گرفتن تو گمرو که از زد